فصل ششم آن روزها بیشتر سرگرمی مادرم شده بود تحقیه جهیزیه کارش شده بود با خال منصور بازار رفتن و خریدن و دوختن بقچه و سجاده ترمه که کنارش سرم دوزی و نوارهای نقده داشت چادر نماز، پارچه پردهای، لحاف های ساتن، ظرف و بلور و چینی و غیره همه را با شور و شوق می خرید و آقاجون جون الحق از خرج کردن دریغ نداشت خانم جون هم تا به چیزهایی که به خانه می آوردند انا فتحنا نمی و هل هله نمی, نمی بازش کنند خلاصه یکی از اتاقهای من به قول امیر شده بود بازارشام و من پیش خودم فکر می کردم، حالا چه اجاله است؟ هنوز دو سال وقت داریم صورت مهربان و دوست داشتنی مادرم که با عشق و علاقه دوخت و دوز می‌کرد و خانم جون که با آن دست‌های چروکیده و لرزان برایم سفره قند و دم‌کنی درست می‌کرد و پدرم که با روی باز کم های گوش زد شده مادر را پذیرا میشد همه و همه رویای قشنگ خانه پدری من بود. خانه امنی که سرشار از محبت و عاطفه و مهر بود. و من همه چیز داشتم. محبت بینهایت اطرافیان و زندگی پر از آرامش و رفاهی که جلوی نیازم را میگرفت، با همه ارزش بالایی که داشت نتیجه برای من خوب نبود. خود نیاز و احتیاج ذهن را شگوفا و پویا میکند. بینیازی بیش از حد باعث تباهی می شود. چون وقتی همه چیز آماده است، و آدم از داشتنش مطمئن است، اعتماد به نفس ای به وجود می آید که انسان را از بین می برد. سیری زیاد اگر باعث ترکیدن نشود، لاعقل باعث بیماری است. و این بیماری بلایی بود که آرام آرام دامن مرا گرفت. اواخر پاییز همان سال موقع امتحانهای ما بود که یک روز صبح توی مدرسه زری گفت عممه هاجاقا برای پنجشنبه آینده من و مادرم را به مهمانی زنانی که هر سال دارد دعوت کرده و من چون وصف امه خانوم که اسمش زرینتاج بود و هایش را بارها از ذری شنیده بودم ظهر که از مدرسه برگشتم اولین حرفی که به محمد زدم همین بود او که برای رفتن عجله داشت جواب نه محکم و قاطعی داد که مثل آب سردی شد روی اشتیاق بینهایتم وارفته گفتم آخه چرا؟ زری هم میره محمد همانطور که آماده میشد گفت زری بره اون سرش درد میکنه واسه همین چیزا با التماس گفتم منم میخوام برم برگشت با نگاهی مهربان مثل نگاهی که پدری به بچهش میکند گفت باشه، شب صحبت میکنیم، الان دیرم میشه بعد هم گذاشت و رفت وقتی به زری گفتم که محمد مخالف است در حالی که از خودم بیشتر وارفته بود پرسید چرا؟ نمیدونم، گفت شب صحبت میکنیم زری مثل کسی که فکر خوبی به سرش زده گفت الش کن، به مامان میگیم رازیش کنه ولی محترم خانم در حالی که شک داشت گفت باشه من بهش میگم فقط خدا کنه روی دندگی چپش نباشه. اگه باشه که دیگه مرغ یه پا داره. آسمون هم زمین بیاد کسی حریفش نمیشه. چون نه از این مهمونی خوشش میاد نه از امه خانم اینا. با هرس گفت ای اون خوشش نمیاد به این چه؟ محترم خانم با خوش روی گفت مادر جون اجازه زن دست شوهرشه. بعد از اونم حالا تا پنج شنبه خیلی مونده از الان نمیخواد عذا بگیرین. اما من که بی دلیل برای رفتن اشتیاق داشتم توی دلم واقعا عذا گرفته بودم. یادم است آن شب محمد خیلی خسته بود، طوری که حتی به خانه خودشان هم سری نزد. عقلانیش این بود که آن شب سکوت میکردم ولی دلم طاقت نمیآورد. به محض اینکه دراز کشید از ترس اینکه خوابش نبرد بی مقدمه گفتم گفتی شب صحبت میکنی ما یادت رفت خسته پرسید در مورد چی مهمونی دیگه در حالی که نفس عمیقی میکشید برگشت سمت من و پرسید اینقدر برات مهمه که نمیتونی تا فردا صبر کنی خیلی راحت گفتم آره خیلی، آرام گفت، حالا اگه من خواهش کنم که بعد حرف بزنیم چی، خودم را لوس کردم، اگه من خواهش کنم که همین الان بگی آره چی، در حالی که دستم را توی دستش میگرفت و چشمهایش را میبست گفت، پس نه من خواهش میکنم، نه تو، با حرص دستم را از دستش بیرون کشیدم، و در حالی که پشتم را به او می کردم گفتم پس منم قهر می کنم. برخلاف انتظارم خیلی جدی گفت منم با کسی که به خاطر یه مهمونی مسخره با هم قهر کنه کاری ندارم. بعد هم طوری که اصلا با من تماس نداشته باشد درست کشید. من که به خیال خودم فقط خواسته بودم خودم را لوس کنم هم تعجب کرده بودم و هم توی کاری که کرده بودم مانده بودم. از ایسال عمل جدی محمد که برایم دور از ذهن بود هم رنجیده بودم هم خیلی به هم برخورده بود تا آن شب هیچ وقت نشده بود که با هم قهر کنیم هرچه سعی می کردم باشم نمیشد. کلافه و بیقرار انگار فرسنگ ها دور باشد دلم قرار نمیگرفت. با اینکه نزدیکم بود کنارم بود احساس می کردم دارم از قصه خفه می شدم. برای اولین بار هرچه میکوشیدم به خاطر حفظه غرورم همانطور بخوابم، میدیدم دور از او خوابم نمیبرد. صدای آه های گاه و بیگاهش نشان میداد که بیدار است. ولی از رفتارش مطمئن شده بودم که قصد صدا زدن و آشتی ندارد. با خودم در جنگ بودم که او هم پشتش را به من کرد. ناراحیم چند برابر شده بود. مثل بچهی که از آغوش مادرش دور مانده باشد پرپر پر, پر می و میدانستم که انتظار هم فایده ندارد. این بار مثل همیشه نیست. حال بدی داشتم. سعی می کردم خود را قانع کنم که نباید پا پیش بگذارم. ولی دلم انگار جدای از من تصمیم گرفت و وادارم کرد بی اختیار به طرفش برگردم. بی را نمی تحمل کنم. صدایش زدم محمد بیان که برگردد جدی گفت بله هرسم بیشتر شد محمد صدات کردم باز همانطور بی اعتنا گفت منم گفتم بله یک دفعه انگار خون به مقسم حجوم آورد پاش شدم نشستم و با صدای بلند و هرس و بغض گفتم محمد آه عمیقی کشید و در حالی که می نشست با همان لحن جدی که حالا عصبانی هم بود گفت. لازم نیست صدا بلند کنی. همون دفعه اولم شنیدم. جواب تو هم دادم. چیه؟ بله به فرمایی. چانم از بغز می لرزید. گفتم. چرا اینجوری؟ سرد گفت. چه جوری نه. خیال کوتاه هامدن نداشت، این اولین باری بود که آنقدر سرد و سخت جلویم می ایستاد و من هم که اول به خیال خودم با شوخی شروع کرده بودم، حالا نمی‌فهمیدم از چه اینقدر رنجیده است درمانده گفتم، خودت میدونی چی توی اینجور حرف زدن ناراحتت میکنه. با صدایی لرزان همانطور که سعی میکردم اشکم سرازیر نشود گفتم. <تصفح> لحنش. هیچ نگفت. در سکوت در حالی که شقیقه هایش را با دست هایش فشار میداد آه کشید. اما باز هم چیزی نگفت. از لجم مشتم را با هرس روی بالش کبیدم و گفتم. یعنی یه آریانا یا اینقدر سخته که به خاطرش با من اینطوری رفتار میکنی؟ سرش را بلند کرد توی تاریکی نگاه چشمهایش را نمیدیدم و سر از احوالش در نمی‌آوردم. و این بیشتر طاقتم را تاق می کرد ادامه سکوتش برایم غیر قابل تحمل بود و در ضمن بیش از پیش مطمئنم می کرد که این بار قضیه با دفعهای قبل خیلی فرق می کند. او از چیزی که من خبر نداشتم رنجیده بود و خیال نداشت به هیچ قیمتی کوتاه بیاید من هم که درمانده بودم هیچ جوری نمیتوانستم بی اعتنایش را تحمل کنم. بقسم ترکید. خودم را روی بالش انداختم و گریه کنان گفتم. باشه حرف نزن مهم نیست. اگه برای تو مهم نیست برای منم فرقی نمیکنه. چند لحظه طول کشید و بعد با صدای آرام که همراه آه امیقی از سینه اش بیرون آمد صدایم زد. مهناز خدایا توی این صدا چه بود که من را این طور مقهور و اسیر می کرد؟ از ترس اینکه که دوباره ناراحت شود بی اختیار فوری سرم را بلند کردم و موهایم را از صورتم کنار زدم. نزدیک من در حالی که روی یک دستش تکیه کرده بود نشسته بود. دست دیگرش را به طرفم دراز کرد. و من مثل ماهی دور مانده از آب به محض اینکه دستم را توی دستش گذاشتم خودم را هم توی آغوشش انداختم و گریه کردم همانطور که مثل یک بچه توی بغلش نگه هم داشته بود آرام توی گوشم گفت: یش مادرینا خوابن، صدات میره بیرون اگه من بدونم با این گریه و اشکگاه تو چه کار باید کرد خیلی خوب میشه. لب برچیده سر بلند کردم و نگاهش کردم. لبخند بلب و آهسته گفت یعنی yani من و تو یه بارم نمیشه بدون اینکه تو گریه کنی با هم حرف بزنی. تقصیر خودته. تو که میتونی من زود گریم میگیره. چرا اینقدر ازیتم میکنی که گریه کنم؟ یعنی yani منظورت اینه که من هیچی نگم. همه چیز همیشه همونی باشه که تو میگی. حالا چه درست چه غلط. تا تو گریه نکنی؟ سرم را تکان دادم و در حالی که عشقهایم را با پشت دست پاک می کردم گفتم. نه خیر، منظورم این نبود. خیلی خوب من دارم گوش می کنم. منظور تو بگو بفهمم. مگه من چیکار کردم که با هم قهر کردی؟ خندید سرش را تکان داد و گفت. مثل بچه ها حرف نزن من باهات قهر نکردم مثل کار خودت رو بهت نشون دادم به چند دلیل همین در حالی که اخمهایم رو درهم کرده بودم گفتم کدوم کار تو نمیدونی کدوم کار نه خیر نه کار نه دلیل های جنابالی رو با اینکه میدونم که میدونی باشه میگم میگم که بیشتر در موردش فکر کنی. باشه؟ تو امروز از من یک سوال کردی. درسته؟ در مورد این سوال هم من حق داشتم نظرم و مخالف یا موافق بگم. حتی بیچون و چرا؟ درسته؟ در حالی که من به خاطر حق خودم و اینکه شوهرت هستم و این حرفها هم نگفتم نه. ولی تو راضی نشدی. گفتم شب با هم صحبت میکنیم. درسته؟ سرم را تکان دادم و او ادامه داد. و تو امشب دیدی که من انقدر خستهم که حتی به مامانینا هم سر نزدم. درسته؟ دوباره سرم را تکان دادم. ولی با این همه این مهمونی کذایی انقدر برات مهم بود که مثل بچه ها پشت تو به من بکنی. نه؟ اگه قرار باشه یک مهمونی برای تو حتی از خود منم مهم باشه، حتما زندگی خوبی بعدها خواهیم داشت، مگه نه؟ پریدم وسط حرفش من فقط خواستم شوخی کنم اگه واقعا هم شوخی کردی نه شوخی به جایی بود ندرست این که من عین همون کار رو کردم هم به خاطر همین بود که زشتی کارت رو بفهمی و از همه اینها گذشته دوست دارم یک چیز برای همیشه یادت باشه در حالی که موهایم را رو از روی پیشانیم کنار میزد با لحنی ملایم اما محکم گفت با همه اینکه خودت میدونی چقدر دوستت دارم و با اینکه که میدونی عشقات رو نمیتونم ببینم ولی چیزهایی هست که برای من قابل تحمل نیست. به خصوص از سمت تو حتی اگه به تو به قیمت قهر بین ما تموم بشه. منظورم میفهمی؟ پس از عشقات هیچ وقت به عنوان سلاح استفاده نکن و از قهر برای به کرسی نشوندن حرفت. دوباره به هم برخورد. حس کردم منظورش این است که من به دروغ گریه میکنم. رنجیدم و خودم را از آغوشش بیرون کشیدم و گفتم گریه کردن من دست خودم نیست. وقتی نمیتونم حرفمو بزنم بی اختیار گریه میکنم. مهربانانه خندید. ولی من دوست ندارم اینجوری باشه. تو تصور کن با بچمون بخوای حرف بزنی. مادری که به جایی جواب منطقی گریه تحویل بچش بده خنده نیست؟ راست میگفت خودم هم از تصور خودم در آن قیاف خنده می گرفت ولی جلوی خود را گرفتم و با لجبازی گفتم به خاطر اینم که شده دیگه جلوی تو گریه نمی کنم. نه نشد جلوی من نه جلوی هیچ کس نه خیر فقط جلوی تو که دیگه فکر نکنی می خوام سرت کلا بذارم با لبخند گفت من همچین حرفی نزدم در ضمن منظورم این بود که تو اصلا گریه نکنی. اونطوری تازه بدتر میشه که. اون وقت همه فکر میکنن زن محمد یه دختر بچه یه لوسه. مگه نه؟ رویم را رو برگرداندم و گفتم. خیلی بد جنسی. چرا همیشه باید حق با تو باشه؟ این بار از ته دل خندید و گفت. <تصفيق> حالا دیدی اگه حرف بزنی بهتر از گرگه است؟ چه مهارتی توی تغییر فضا داشت؟ او تنها کسی بود که از اینکه مغلوبش شوم لذت می بردم؟ سرم رو, رو روی بازویش گذاشتم و حس کردم آرامش دنیا به قلبم حاکم شد؟ خدایا، چه قدرتی توی این وجود بود که این طور به تمام هستی من حکومت میکرد؟ و در کنارش احساس میکردم به مطمئن ترین پشتوانه دنیا تکیه دارم؟ داشت خوابم می میبرد که محمد با صدای آهسته گفت: «در زم در مورد اون مهمونییم فردا حرف میزنیم. خنده هم گرفت. گرفت. دعوا فراموشم شده بود و آخر سر هم دوباره حرف او شده بود. فردا صحبت می کردیم. ولی دیگر مهمانی مهم نبود. مهم محمد بود و آغوش گرمش که برای من امن ترین جای دنیا بود. با آرامشی شیرین پک هایم بسته میشد که دوباره توی گوشم زمزمه کرد. هم شب خیر هم خداافظ. من صبح میرم کو. خواب گفتم: «نه، نرو با خنده که توی صدایش بود پرسید: برای تو چه فرقی میکنه؟ تو که تا من برگردم هنوز خوابی؟ راست میگفت. ولی با این همه دلم نمیخواست برود. پس دوباره با التماس گفتم تو رو خدا حالا فردا نرو چی میشه مگه؟ اصلا به خاطر این که تا حالا منو بیدار نگه داشتی حقت بود تو رو هم بیدار میکردم و به زور میبردم. دست با و گفتم نه نه ببخشید قول میدم دیگه تکرارش. ای خوابالوی تمبل لبخند زنان دستش را محکم در دستم نگه داشته بودم که خوابی آرام وجودم را گرفت و چشمهایم روی هم افتاد. خوابی خوش و سنگین که تا نزدیکی های ظهر فردا ادامه پیدا کرد. با صدای محمد در حالی که آرام موهایم را نوازش می کرد و می گفت پاشو خانم کوچولی تنبل زهر شد تو هنوز خوابی؟ به زور چشمهایم را باز کردم. آفتاب کاملا اتاق را پر کرده بود و نور چشمهایم را میزد. بالشی را که بغل کرده بودم روی صورتم گذاشتم و محکم نگه داشتم تا محمد که سعی میکرد آن را از روی صورتم بردارد موفق نشود. با التماس گفتم محمد خواهش میکنم تو رو خدا فقط یه خورده دیگه. با صدایی سرحال و شوخ گفت چی؟ پاشو زود باش. میدونی ساعت چنده؟ من دیشب فقط چهار ساعت خوابیدم. تو خوابت میاد؟ من که چشمهایم هیچ جوری باز نمیشد، همونطور همانطور که بالش را محکم نگه داشته بودم گفتم. فقط یه خورده دیگه به خود خوابم میاد. با حالتی قهرآلود بالش را رها کرد و گفت. باشه هر چقدر دلت میخواد بخواب، من رفتم. مثل فنر از جا پریدم. کجا؟ در حالی که برخ شیطنت توی نگاهش بود گفت سر درسام از فریبی که خورده بودم هم حرسم گرفت هم خنده بالش را پرت کردم طرفش خواب از سرم پریده بود